ذهن خالص امشب ربازارتارز آمد کنار تخت نشست و مدتی را به صحبت درباره پارهای مسائل کوچک گذراند. به نظر ما مرا را به منظوری آماده می کند تو باید به کلام من ایمان کامل داشته باشی چون من و فقط من می آنچه آن را که از اکست به تو ارسانی دارم سرم را به نشان تعیید تکان دادم او در حالی که از روی تخت بلند میشد، به من گفت بلند شد می خواهم با من بیایی دستم را گرفت و از تخت بیرون کشید ناگهان دیوارها به هیچ تبدیل شدند این, این به نظر می آمد که در میان مزرعهی پوشیده از انواع گلهای عجیب ایستاده ایم. هرگز چیزی مانند آنها ندیدن از راه پرشیبی بالا رفتیم که درختان اطرافش شبستانی چون کلیساهای جامع ساخته بودند. آفتاب از میان شاخ و برگ درختان سایه روشنهای زیبایی بر خاک میافکند. در شگفت شدم از اینکه چرا نور درخشان آفتاب سای نه از من و نه از استاد بر زمین نمیاندازند. به دروه کوچکی قدم گذاشتیم که دیری از سنگ قهوهی رنگ در آن جای داشت مردی با ظاهر نیرومند، سر تاس، چشمان تاریک، بوست، تیره و دهان تهن در خرقه شرابی رنگ روی یک صندلی راحتی در میان چمن نشسته بود عده بیشماری روی چمن در مقابل او نشسته بودند لابازارتارز تعظیم کوچک او را با لخندی پاسخ داد. آنگاه دریافتم که در پیشگاه استاد عظیم اک یاوب ساکبی در شهر معنوی آگامدس ایستادم. لبازارتارز به حضور رسیدیم استاد یاوب ساکبی تبسمی کرد و گفت: لطفاً بنشینید. خطبه در شرف آغاز است. استاد اک دوباره به سخن درآمد. فقط سوگماد واقعیت دارد شما باید از جستجوی همه چیز دست بشویید مگر سوگماد تا به درک واقعیت حقیقی نائل نیایید هرچه هست خودبینی و است. باید بدانید و درک کنید که خدا تنها با توقف همه جستجوها یافت می شود و آن هم با حشت ابزار کنکاشگر ذهن مویستر است ذهن تنها یک ابزار است که در جهانهای پایین تر از ناهیه آتما در اختیار کالبت قرار گرفته است تا تواند در حین اتخاذ تدابیری به منظور محافظت روح از محیط طبقه مادی با بکارگیری قانون خداوندی اک به مسابه ابزاری جهت هدایت روح در بازگشت به خانه حقیقیش عمل کند کتانی که به شهر معنوی مشهور به آگامدست که در دوردست ترین صحراهای ارتفاعات هیمالیا قرار دارد میآیند باید در کالبد منوی و حقیقی خود مستقر شده باشند که چوزا یا روح نامیده می شود. ذهن و سایر کالبدها مجاز به ورود به این شهر شگفتاسای نور نیستند پیش از ورود به سرزمین زیبای ما باید از قالب ذهن برهنه شد این سرزمین روح خداوندی است و فقط روح‌های خالص در آن به سر میبرند آنجا که عالم در یک ترفه بیداری روح از آن تو می‌گردد و روح خود را در عالمی تجربه میکند که ذهن مورد نیاز نیست در این مکان شمار زیادی از بالا من سبان نظام وایراگی به سر میبرند این گله همه به شهود مجهز روح به هدایت دست سوگماد وارد طریقی می شود که او را به خانه حقیقیش اش میرساند شریعت کی میگوید خالیا در درون است خالیا در بیرون است خالیا در عوالم زیرین و زبرین است پس باید بدانیم که روح از خالیا خالی می شود تا از سوگماد پر شود ذهن هم در خود و هم در توهماتش دوچار تناقض است حقیقت سوگماد فراسوی کار کرده هر گنه اندیشه بشری نهفته است. با سخن نمیتوان نشانی از آن گرفت. استادان آموزش های جهان های تحتانی را میشناسند، اما ما به حکم شفقت اندکی از حکمت را اینجا و آنجا به بشر واگگذار میکنیم. حالانکه کمال مکوب استاد رهبری مرید به مرحله ای از طریقت است که، خود در یک لحظه به بیداری رسید. کلمات به سوالات تو درباره طبیعت سودمات پاسخ می گویند. اما به تدریج به وضعیتی از هوشیاری سعود خواهی کرد که مشکل واقعیت چندان به سؤالات بیپاسخ محدود نمی شود بلکه مشکل اصلی تداوم شکوفایی منجر به این وضعیت یعنی اعتماد به قدرت استدلال منطقی در رسیدن به معنویت حقیقی است لایتسی استاد حق طبقه اثری میگوید مقصد خود را هر کجا که بنهی تا همانجا شکوفا میشوی و با ارتقای معیارهای معنویت روح به طبقات بالاتری از بهشت راه می‌یابد تا به جایی برسی که معنویت حقیقی آغاز می شود می که همه قدیسین و همه موجودات چیزی جز قدرت اک نیست زیرا چیزی به جز کال و دکیهانی سوگماد در خالصترین انصارش هستی ندارد آن در آسمان میبینی و به نظرت آفتابی به تابناکی دوازده خورشید میآید، جز باستاوی از نور فرمانروای این طبقه نیست صدای نی و ویولونی که میشنوی دریاچه‌ای از شهد است که با قسل در آن روح سیقال می‌بیند آنگاه دیگر هوای مادیات نمی‌کنی چون اشتیاق خداوندی جادوی جذبه قهقرایی دنیا را از تو زدوده است. هیچ معنی بشر در اینجا قائم بزاست و فنانا پذیر است سن و سال ندارد با ایارهای زمینی قابل سنجش و توقع بندی نیست و میتواند بر ابعاد زمان و مکان اشراف داشته باشد این خیش همان قماشی است که اکنون در مقابلت میبینی و چنانچه در برابر آن به استدلال و تحلیل مبادرت کنی فوراً دوچار خطا میشوی این قماش همان خلعه بی پایانی از زمان است که قابل تخمین و سنجش نیست. خویشه کیهان اک است و بچه تمایزی بین اک و بشر نیست مگر در اینکه آدمی به شکل وابسته است و در نتیجه اک را در جهان حواس در قالب ادراکات حسی جستجو می کند. با این اود به جای یافتن اک هرچه بیشتر از آن بی بهره میماند. این به مانند استفاده از خدا برای یافتن خدا یا استفاده از ذهن برای دریافتن ذهن است. تو نمی دانی چگونه افکارت را متوقف یا تشرویش را فراموش کنی خدا مستقیما در برابر توست، زیرا این قدرت قدرت اک خداست؟ و خدا درون تمامی زندگان در حال تجلی است از پست ترین تا عالی ترین تمرین معنوی تو را چه فایده که هماکنون در همه وجوه اساسی از کمال برخورداری پس فقط تسلیم به ماهانتا استاد حق در قید حیات است که تو را آرام میبخشد و علوهیت تو را محقق میسازد. چونانچه نپذیبی که قدرت فقط قدرت خداست و بخواهی دل به صورتها، مشقها و آداب ببندی، مجبوری در جهانهای زیرین باقی بمانی تا روزی که درک آن برایت میسر شود اگرچه بعد از میلیونها سال به معیار زمینی باشد اما تو را همان گونه که در دنیای کوچک من در زمان مصر باستان استاد به سراغم آمد و گفت که مرا برگزیدند قدرت خداست و راه هم راه خداست نه قدرت دیگری هست و نه راه دیگری خدا آن است که به خالیا میماند چون نه شکلی دارد و نه ظاهری آن گونه که مصطلح است به کار گرفتن خدا مترادف با استفاده از قدرت خدا به قصد پیوند و صورتهاست خدا که همیشه بوده است، خود را به هیچ صورتی محدود نمی‌کند. به تو میگویم که بر قدرت اک بیدار شو و دریاب که چیزی برای دست یافتن نیست. این خداست. خدا و بشر جزء قدرت اک نیست. قدرت خداوندی ذهن نیست، و همه صورتها. کاملا فارغ است چنانچه خود را از استدلال و تردید رحا همه کار از تو ساخته است سپس خدا را خواهی داشت چون دیگر نیازی به خدا نداری در جهان جسم این عمل به معنی واکنش به رویداد هاست. در مقابل پدیده ها واکنش نشان بده تابل فور همدم آن شدی واکنش به استراب علت تازه‌ای برای استراب می‌آورد. پس قانون کبیر حکم می کند که در طلب آن باشی و نه در نفی آن زیرا تقلای دفع و طلب بزرگترین گناه بنی آدم است بنابراین کل حقیقت از این قرار است که خداشناسی چیزی نیست که با حواظ قابل دریافت باشد بلکه خالیایی با حضور مطلق خاموش خالص و به طرز شگفت انگیزی صلحلحامیز است و بس تو باید در آن بیدار شوی و ررفهایش را بیازمایی. همه راههایی که به آن منجر می شوند و تمامی مراقبه‌هایی که برای کسب آن تدبیر میگردند رؤیایی بیش نیستند، چون ناگهان بیدار میشوی و در میابید که تقلایت به صرف چیزی جز اعمالی غیر واقعی ننشده است. خدا؟ تا کل عالم در یکایک موجودات با تابناکی کمال خیش میدرخشد اما آدمی در درک درخشش معنوی خدا ناکام میماند اگر می میتوانستی عقل را از این عرصه بیرون کنی خدا خود را همچون آفتاب جلوگر می میکرد و کل عالم را در نور و صوتی غرق میکرد که نوع بشر تاب به دیدارش را امید داشت آدمی که اقامت خود در زمین باید قوه ادراکش را به کار گیرد لازم نیست دست راستش را ببرد چون نمیتواند او را به خدا راه کند نه آنچه من میگویم این است که استدلال در باره خدا تو را به او نمیرساند برای رسیدن به خدا نباید حواس خود را ترک کنی کافیست با آنها متکی نباشی و با تکیه بر ادراکات حواست زندگی نکنی بلکه هستیت را مستقل از ادراکات حسی و جهان پیرامونت حفظ کنی راه نه زیر پای توست نه بالای سرت نه به راست میگراید نه به چپ راه درون توست باید به درون بنگری از خط مشی جهان بیرون مستقل شو تبرینات معنوی اک را پیشه کن به صوت اک گوش فراده این راه رسیدن به خداست این راهی به درون خالیای بینام است و برای وحدت یافتن با این مقام خالق از نامی که در ناحیه خالص سودماد مقیم است باید همسان مطلق تعالی شدید این رؤیای جاویدان و بیانتهای واقعیت و معنیت است کسی که طالب خداوندی است راهی جز پیمودن طریق اک نمییابد نور مقدس را به فقط در طلب خدای یگانه برای و به صوت خداوندی گوش فراده ذکر پیشه کن چون آنچه مقصود هیچ چیز دیگری نباشد ذهن در وضعیت كودکانهٔ خود باقی میماند و آنچه ذهن از چیزی در نیابی زد روند منفیگری را هم طی نمیکند آنچه نه تولد مییابد و نه نابود میشود خداست مردمان عادی جستجوی خود را در عالم بیرون وجویندگان در درون محقق می کنند اما راه واقعی رسیدن به خدا در این است که هم خیش بیرون و هم خیش درون را فراموش کنی آدمی از ترک ذهن وحشت دارد هراس از اینکه درون خالیایی فرو افتد که چیزی برای دستانداختن نداشته باشد به همین دلیل است که نوری ساروپ یا حیات نورانی استاد همیشه به همراه پیرو است تا روزی که خود بتواند به تنهایی بیستد ولیکن بشر نمیداند که این خلا فضای خالی نیست بلکه خود اقلیم حقیقی خدای یگانه است طبیعت اک بی ابتدا و بی انتها بودن است به پیری مکان نه تولد و انهدام نه هست و نیست نه خالص و نه ناخالص هم جابیدان و هم جوان رنگی ندارد اما سرشار از رنگ است خاموش است و پرخم همه هست اما نیست هم چه کسی میتواند شکوه خدا را با کلمه بیان کند لذا آدمی باید بیاموزد که ذهن و اشیاه معلول ادراکات حسی توهمی بیش نیست که روزی باید این جهان حوث ها را ترک کند و به منزلگاه حقیقی خود در ناهیه بینام نزد پروردگار مطلق بازگردد در زبان بشر کلمه ای نیست که در برگیرنده یا فاش کننده روشن روشنزمیری باشد و کسی که بدان ناعل می آید نمی گوید که می داند. چون به پاداش و اکتساب نیست بلکه در نتیجه آرام گرفتن حواس و واگذار کردن آن به استاد اک رخ دهد اگر بتوانی رکن استدلال و تحلیل را از مغز بزودایی، اگر بر روی زدودان افکار تحلیلگرانه تمرکز کنی به زودی حقیقت خدا را کشف خواهی کرد کالبد کیهانی خدا واقعیت است کالبدهای انسانی او آرزی بوده و هر یک به اقتضای نیاز در جهان فیزیکی شکل میگیرد. برای کسی که بتواند این حقیقت را ببیند تمامی توهمات طبقه خاکی ناپدید می شوند او نر سعادت به سر می در شهر آگامدس مقیم می شود و آماده است تا به جهانهای بالا راهنمون شود پس بگویم که بشر هرچه بیشتر خدا را میجوید خدا هم بیشتر از چنگش میگریزد. آدمی هرچه بیشتر درباره خدا گوید و به آن بیاندیشد در که از آن دورتر و دورتر میشود تعقیب آگاهانه نور به معنی از دست دادن نور است راز برخورداری از حضور خدا در این است که دستت انگیشیدن و تعقید کردن برداری آنگاه چیزی نخواهد بود که نتوانی درک کنی به خاطر داشته باش که حکمت نتلب می کند و نه آرزو تو را با معمائی برای حل کردن به درود می گوین. هزار پاس شاد و مسرور می خرامید وزق از شوخی طبعش بپرسید کدام اول قدم برداری آخر از این صدها کدامین پا تواندید نخستین پا و بعدان پا به تردید دو پانصد پا در اون نه این سو راه یابید و نه آن سو که افتادش به دام شک و تردید چشمانم باز شد و را در اتاقم دیدم که در کنارم ایستاره بود آنچنان لبخند گشاده‌ای بر لب داشت که گویی مزاحی پنهان با من کرده باشد. سباطاتات. اینا که این محبوب من، آیا حکمت خدا را درک کنی؟ آیا قبول داری که من میتوانم هرگاه که اراده کنم، تو را به هر مکانی ببرم؟ این آغاز سفرهای بیشماری است که به عوالم درون خواهی کرد. من آینده دلپردیر و پرمش را برایت نوید می دهم.